أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله طيبين الطاهرين المعصومين الذين الدائمات على عزائهم اجمعين اللهم افرنا جميع المشتبين ورحمنا برحمتك يا رحمه رحمه هر صدرية بعدية جهاد و توضیح بعض از نکار در برای آشنایی با سطح عمومی راجع به مسائل مثل همین مسائل بی و و مسائل از این قبیل متعرضی مردار حالا اون وحث تفصیلیش انشالله تعالی در نحش مکاسب بی و خیاران انشالله اون دوبار متعرض بشید تو بخش مکاسه, متحم... تو بخش مکاسه متحم... محرمه منتعرضی این اسمت های به اسطلاح و قانونیش و در این کتاب نظریه الارد در این چاپی که داره که یک جلده اون در جلده دیگه شده در صفحه شیستد و قبل از اینکه واضح وقت تدریس بشیم این نقطه کنم در صفحه شیستد یک به وارد به بحث بطلان عقد شده هر در چه صورتی بطلان داره و بطلان چه صورت داره چند صورت؟ خب یک مقدماتی چینده چون بحث شکلانیه من وارد این بحثتی طولایی نمیشه. ایشون اولا تقسیم میکنه بطلان رو به سه رسم بطلان مطلق ایکی عدم اه. ایکی امعدام حق به تدیرشو از این که بطلان مطلق و یکی هم بطلان نسبی البته این تقسیم سلاسی رو ایشان میگه و نقاضی هم میکنه که بعد از انتقاداتی به این تقسیم اصطلاح شده که طبعا بحث ما الان نیست چون نهاز کردم نمو خیم این بحث بشیم فقط برای آشنایی به اصطلاح و یه تقسیم سنایی هم داره در تقسیم سنایی که دو, دو تا بطلان داره مطلح و نسبی ستا نداره حالا من این رو به عنوان فقط آشنایی اجمالی بکنم تا این که آشنا بشه در بخش تقسیم سلاسی به قول خودش ایشون اولا یک کان قانون رومانی لا يعرف و الا نوعاً واحداً من البطلان این برای ارزش حقوقی خیلی خوبه که چون ما الان در مسائل خودمون در حصول فقر راجب بطلان هم که به اصطلاح جانب وضعیه نحیه در مقابل جانب تکیفی بطلانه هست خب نظریاتی داریم الان در مجموعه نظریات دنیا اسلام کاملا متعدد در این جهت که اگر نه شد از یک ای آیا اونجه بطلان هست یا نه یا تفسیر باید بشیم این مطلب البته نه در این جا ولو نه شرعیست و استظهاره برمیاد به استظهار لیکن زمینه های هم داره یعنی این مطلب و اصولا انشاءالله برد توضیح میدم در این کتاب هایی که ما الان مثل بحث حقوقی جدید رو متعرض میشن فقط نازرن به جهت وضعی این حقوق یعنی اینها تو تدریس هم انشاءالله میگیم توی غشت و تدریس اینها بحث تکیفی رو ندارن یعنی اصولاً بحثی به نام مقاسه و مثلا تو این نظرگیت الارم مفتر نمی کنه. اصلا نظرشون روی مسائل عرب و خصوصیات عرب و همون جوانه به کاری به جوانه به تکلیفی که این معامله حرامه این کار حرامه چون حرامه منشه این میشه که اون معامله باطل بشه مثلا در بابعه متعرض کزر شده که اگر شخص دروغ گفت این در رضای متعاقده موثر میشه اما به این کار نداره کزر حرامی یا نه اصلا کاری به این نداره مثلا به شما گفت این طنجره رو به شما فروختن در به خودشون چهار کیلو دروغ گفته طنجره نیست یا گفته این کتاب کذایی رو فروختن در که دروغ گفته یا غلط واقع شده یا دروغ گفته یا تدلیس کرده اون در این فکر نیست که مثلا تدلیس یا کذب حرامم غلط حرام نیست مثلا در به این کار نداره که یکیش حرامه یکیش حرام نیست اون نظرش فقط رو جانب وضع آیا درست هست یا نه درصال که شما مثلا توی خود مکاسه محرمه و تفصیلاتی که خوندیم مثلا روایات رو ازش بیشتر این که جانب تکیفی رو که حرام هم سیانه این خب، آشناه بشین که در فقه اسلامی که ما الان بررسی میکنیم یک زاویه بحث در این قوانون غربی که همین قوانون غالبا به دنیای ما به شرق منتقل شده یک زاویه دیگه بحثه اونا وقتی بحث کیز رو تو احمد مطرح می کنن و فقط نظرشون جانر وزیز حالی مخواد کیز حرام باشه نباشه کسی بگه نگه الزام آقا اون کار اصلا به اون جهر نداره که اصلا به اون نکته نظری نداره اینه خوب دقت به رحمه لذا من اینها رو ما بیشتر از این جلبه به اسامو تعرض میشیم و حتی اعتقاد خود من یعنی با شواهی دیگیشون از کلمات عورده به نظر ما میاد که این تح... تح... تحلیل های اقتصادی که اینها ها مال مثلا غرمانی هیچدام و نونزده باشه مسادری که ایشون نمیدون چون با حقوق غربی ها از این عبارتی ایشان معلومی شه که احتمالاً این تحلیل ها از اون تحلیل های در بابه یا اخسام به اصطلاح مثلا عدم رزا در اینها بیشتر از غرن 19 ها مطرح شده که بعد به صورت قارونی دارن مدید و ما خود من احتمال میدم که خوده قطع بکنید یک مقداری هم اینها تحت تأثیر ترجمه آثار اسلامی چون قبل از غرن 19 ها فقه های ماچه شیعش و سنی فقه های سنی از یک جرد فقه های از یک جرد خیلی این مواحص و حلاتی کردن خیلی زحمت دوش بشیدن همین بطلان و بطلان مطلق و نسبی و اینها رو زحمات زیادی کشیده شده بعید نمیدونم که تفکاری که پیش ما بوده و سر ترجمه به اونها رسیده اونها ولی توش کار کردن یک دو زاویه جیدش رو هم عوض کردن و متأسفانه بعد که اینها بساطه قوانین در غرب زمان من دومرته که به کشور از کشوره بسکارو درگشتیم دومرته همون صدق قانون دیگه یه تحلیلی توش نداره و این قوانینی که برگشته متاسفانه این نکته رو قانون ما یعنی که گذار جمهوری اسلامی ایران دقت نکردن یعنی دقت نکردن که اونا چه جوری تو بحث علم مطرح کردن فقط به لحاظ اثر وضعیه به لحاظ اثر تکلیفی و حرمت و آثاری که از اون جهت داره نیست ادا خوب دقت بکنه خود ماها هم که مثلا عبارات اینا رو میخونی باعث کاملا روشن بشه که اینا از چه زاویه وارد شدن ما از چه زاویه عبارت میشیم اینطور نیست که ما هرچینو بخوام بگم قبول بکنم احتمالام میدم که مقدارش از ماها یعنی اصلش بود ایشون ادعا میکنه اگر این باشه این معلوم میشه که یک تفکر اجتماعی بوده که در قوانی در قانونی قوان که در بین رومان روماناتی مسللم قانون داشتن و قانونشون هم من این شابه به میکنم جمبه های چیز قانونی داره عدویت قانونی داره این مراد من از عدویت قانونی مثل این قوانین همورابی که رودو چارزا قانونه نام المسله 3800 خوردهی اون بیشتر جنبه تطریق رو داره من نگاه کردم عده از سورش مثلا اگر مردی داره گابی باشه این گابش رو به این قدر بفروشه بعد که فروخت سه روز خیلی جنبه های تطریعی داره جنبه های قانونی و کلی مثل این که مثلا مثلا معاملاتی که مورد نه قرار میگه این فاصله اینجوری نداره اونی که من درمش نکندم اون با قرار اما مسئله رو نمده اما کردم ایش رو که نگاه کردم خیلی همه همه تا با با هم را بی الالآت تا یومنه هنوز همز به عنوان به استثناء یکی کوچیکی به استثناء اون به این قدیمترین قانون بشری است الان در روی زمین بودی چهار سال قبل دو هزار سال قبل از میلاد مسیح این به عنوان قدیمترین قانون به صرف همین منطقه ای اراغ بوده بابه که به اصطلاح هلوه الان در وسط ایراغ مرکز ایراغ بود الان که برای استفاده از و خیلی بوده ایشون میگه که از رومانی لا ان من واحده من اون نکشه بحث بکنید بحث این نیست یک نوع بوصله اون نکته اوغلایش شده بحث کنید اون اینه فاذا لم يسوف از شکل المرسوم المر... اون نقصه و رحمه من ارکان تکیه تق... نه کانه باسته در باشه شد تحریکی بودی شد اگر رحمه ارناو یا شرط هر باسته در فقط ما کاری که در قوانه دیمی کردیم از لسان دلیل دردیم دلی این شرطه اصلا لا طبع مالی سندر اگر گرفتیم که این حدیثه ثابت باشه و قبول بکنیم تو میشه لا طبع مالی سندر یعنی ركن عقلی میل که تو باشه یا شرکشینه حالا یه توضیحی رجالی از این خیلی نسبیتی من اولا برای ما خیلی چون مثلا شبیه این کلام رو ما در دنیای اسلام از ابن حزم داریم هر جا هر نظری ناهی داشته بشه به عقلی باطله مثلا یه بار رو ما باطل بوده دیگه تخظیم بندی نمی‌کنه دبی این هر وقت رفن اقنه بود یا شرط اقنه بود باطله وقتی کامید ما شرط رو از کجا میشنسیم میگه اگر آمد گفت لا تر به ماله که این رفن اقنه بود وقتی میگه تو نیستی که این باطل یا مثلا فرض کنید این که من قشتن ها فلی سمینم لا یحل الله و وقتی گفت لا یحل الله و الگشت اگر قشت کرد این شرطشو انجام نازه باطله لذا از مرحوم مقدس عبدالگی هم خوندید. بیشکل اظهار کنن که از این خصوص ممکنه بطلانه استظهار و بطلانه عرضه اش بشه در این هی به عرض خلوم هم در نظر داشته بشه بله کان باطلن به حکم قانون دونه حاجت ندار قضای بذاره حالا این دونه حاجت ندار قضای بذاره کن نمیتونم مرادیشون دقیقا چیه شما ما یه اصطلاح ماین آنین اصطلاح دیگه بکن احتمالا مرادش این باشه این حتی نیاز به مراجعه به قضا نداره که بریم پیش قاضی قاضی حکمو رو میکنه بکنه ان شاء الله تعالی هم من عرض میکنم اجمالا ببینید ما اصولاً ترتیب تعبیرمون اینجوریه وقتی یک عقدی رو بررسی میکنیم از نظر شرعی یک مقدار در درجه اول ببین شارع مقدس چه پیدا و قیدی برایش داره این یکیه در درجه دوم این در همه جا جاری نمیشه یعنی به این صورت نیست با نقص کم و زیاده کلاوازه میشه دو ممکن است که این مطلب چیزی باشه که توش اختلاف برانگیز باشه نقاطی پیدا بشه که اختلاف باشه روشن نباشه جایی که نقاط روشن نیست قاندش اینطوریه. یک در خود نصوص روی که اگر این اختلاف شد این این جدون اینه ما اصطلاح هم یه حکم اولی دو در مطلوس نگاه این صلاحیت قاضی بشه. مثلا یه یسته لفت. یسته لفت این پیش قاضی با قسم بخونه. استحلاف این نیست که خودش قسم بخونه. چه قاضی, قاضی با داره. پس اول خود عدلیل میاد میگه شما این کارو رو بکنیم تا این حل بشه. مشکل دو اون راهی راه برای حلش نمیده یکی بار میده پیش قاضی بریم. در درسته های قضایی. این به طور متعارم. الان تصادفاً همین مسئله‌ای که من هستم، درم که مخالفهش کاملاً نمود داره. چرا سر شیء فهم کیشون فهمید؟ من دیروزم بهش خوندن، دیروزم یکاری میخونن. ببینید ما یه مشکل کوچیکی داریم. بعضی از مفاهیمی که در عرب ابهام داره از یک جهت، بلکه بعضی از رو انجام داده میشه از جهت دیگه، وقتی میخوام این رو نفس قانونی بکنم با مشکل برمیخوره. این کیشون آمده میگه مثلا تدریس این از شرایط تدریس این است اگر یادتون باشم دو هفته پیش از مرحومی روانی کنید که ایشون برای غشت شعب شرط داده شد که غشت با این شعب شرط محقق میشه این نقطه چیه چون هم مرحوم غشت امهام و ارفی داره این یک و هم چون تو ارفتون و معاملات یک مقدار غشت هست به قشل پسیمتی هست تو اینکه یک شراب بارا شرشن بکنه درسمان میبیشه توی مثلا خوشقاب میگذاره گل گل برشیزه پس هم یک نوع تدریسی یک تدریس خاصی با ما یک درجهش در عرفی داره لذات میگه خوندین که ایشون بحث غرم هم همیتون در بحث غرم میگه چون اصلا معاملات برای غرمه مثلا معاملات در اینه که انسان تا جایی که میتونه استفاده بکنه لذا شن گرسن بعضی قوانی متعرضه قبل نشدند که قرم نشدن. توجیه حقه بکنه. دقیقاً میگن این جور مفاهیمی که هم خودش ابهام داره فی نفسه یعنی مصادر مشتبه داره و هم یک درجاتش توی جامعه هست اما طور کلی نحوه قانون گذاری رو توجیه میکنن یک ممکنه قانون گذار برای اینکه این, این ابهام ها برداشته بشه یک حد و حدودی بذاره. بیدید شما مروم های بیرهانی در از از ادله چهار شرک خودش برای قشن که قشن یک دو سه چار حدث از اون کار اینه دو اگر جای باز ابحام پیدا شد به طور مطارق میرد به طور مطارق یک خود محمد بیاد نقطه قرار بذار این نقطهی که خود مقنن قرار میده این صورتی که حکم عرب مثلا اینجا شکر کردیه قراری اصلا تو بنا رو بگذار فعل مسلم و سهر بگونم کشن ببینی این بنا رو بگذار و سهر این نیست که شما به قاضی مراجعه کنم به قاضی مراجعه کنم خور کنم باید بنا بکره این نحظه کیفیت جن همیشه از ذهبتون باشه تا خوب به اصطلاح نسیق نواز شنیم دو میگه اگر شک شد یسته لفت این یسته لفتی در قاضی برگردیم دلشانی شد از ما این کلن یک راه راه دیگه این که چیزی در شاره نه در قش نگیرم ما در قش دو سوال سؤال که نظره که میگه داره میپروشه اما مخلوطه اما بگه نه. اگر مخلوط باشه قش نیست اگر زیرش باشه پشت اگر خوب و با هم مخلوطه این قش نیست پس در اینجا می که علمه عل مثللا بعد از موارد رو توضیح دادن شهر دادن. یا از پی بر شده که ش ما میکنه آب رو با شیر مخلوط میکنه ما میگه خودش پیرم خودش مصرف میکن ش اما بید نه عمل بفل دفت میکنیم. پس گالی اوقات در نصوص میان اون حالت شب شف و شبه رو برمیدارن و توضیح بتون میدن. و اگر به جایی نرسید برمیگرده بهقطذا این یک دو وقتی میگه اصولا روایت ساکته مثلا روایت کلا ساکته میاد تا میگه مثلا پیش حرامه بعد کدام کجا میشه شوهه میاد شک میاد نه بحث قضاوت رو مطرح میکنه نه بحث یک علاماتی مطالب رو یک مطالبی رو گفته بشه که یک اصولی رو گفته بشه که به اونها مراجعه کنیم در این جور ها که ساکته خودی قضاوت کنیم قائلش اینه موارد شک رو باید در درجه اول با اغلا مراجعه کرد و فهم اغلا در درجه دوبار دستای قضایی پس خوب روشن شد یک سلخ مخاهم ما داریم که خواهی نخواهی با مشکل بگروم میشه مثل کلمه قشن اگر یک مقدارش در روایاتنا این راه کلی استدلال و استظهار رو تو زیرون داشته باشه من احتمال میدم شاید مرادیش بودم همین بوده احتمال میدم بیشون میگه اگر عقد شکل مرسوم خودش نذاره کان باطلن به حکم قانون ما اصطلاحا به جای قانون میگیم حکم اولی دون حاجت نیاز قضا احتیاج به قضاوت و دادگستری نداره شاید اشان مراد ایشون باشه اصلا نیازی به او ندرید سوم ده حال بعد داره که کنه میکنه که این روم قدیم بود روم باستان الایجان به بطلان بله وسیلتم یه میگه ها ال رومانی فهم این برشور یه قانونه یا نظام قضایی شونه این اصطلاح من نمی‌دونم یعنی چی ال قاصر الذي لم يبلغ الخامس والعشرين مما يصيبه من ضرر من جرائر عبود التي يبرمها عن تهيش و عدم تجربه میگه قانون در اینکه حفظ حقوق و حمایت بکنه تو اهرضی که یک نوع قصور دارن آشنایی با بی ندارن آشنایی با معاملات ندارن سرشون کلاه می میره و به 25 سالی دی در اینجا داره که یک سنی قرار داده 25 سالی و عدم آشنایی برای اینکه که من مایوسی بود و حس میکنه که این در زرر واقع میشه من اقود علتی یبرمه ها وقی غیر که ان پشش بی بیفکری یعنی قلط بی‌توجهی و از او عدم تجربه واهذه الوسیله ی دعوا استرداد یرفع القاصر علمن تا عقد به اون کسی که قاصره میگه آقا من حواسن تمن که وارد نیستم این آقا من داده این گران داده مثلا صحیح تر دو ماده فعلی این اصلاح ما از چندین خیال خیلی هستیم. این میگم عجیب از ترجیح بیم داره. خیلی صبر داره که در کنکل روشیم و هر آن این با ما که چون قطعا می دونیم که فرمان اسلام از جزیره العرب متأثره در آن باشد، نیت خوگابیه میشود. ولی چطور شده؟ در اینجا گفتن اصلی که اینکه اون طرف قاصر باشه با آلوشش تجییده شده باشه و عدم تجربه و سن 25 سالگی خیلی عجیبه این دو تا مفتر هر دو در قرآن آمده خیلی عجیبه یا که به جای 25 سالگی فعداد بل اقوم نکام 15 سالگی بنابار مشروعه خیلی تحجیب آگه واقعا من این کانش شده اینجا سن سنی رو که محبوب کرده 25 سالگیه در قرآن کریم که بل اقوم نکام و آنست و من هم روشن و دیدیم که اینها رشیدن در معاملات حتی ولی منوال هم اونجا عنوال هم قاسر و 25 سالگی بود خیلی چیزه خریدی که نه انصافت هم سالگی و این که پیش داشته و جمعه قلیشان. و به اون اجازه داده که معامله رو که انجام داده بتونه برگردونه بله تیستره دو ما زفه و اگر این این کار کرد حق داره خیلی واقعا هر چی من فکر میکنم چطور شده بعد این مطلب که اگر معامله رو انجام داد ولیشون میگه اینا یکی یک اینکه قرارداد بین ما با این قانون رومه باستان در دریشش یکی بوده ولیکن ها ده دعوا ادعایی که من قاصر بودم و من منفصل نبودم التی من شانها ان تب تلل این بطلان بطلان نسویت استداره که خیار باشه. کانت لا توتال لقاسر این دعوات که حقی ابتال داشته باشه الا و غبنون من جرائل عقد لدیت انوفی دیگه آسوگین هم نصر کلا و وطالره بذاله که مدت قصیره نه خیلی عجیبه. تازه این هم باید در یک زمان محدود نه بعد ده سال نه از یک سال تو روایات ما هم سه روز آبا خیلی عجیزیم مدت رو قصیبه در یک مدت کوتاه و تو روایات ما سهار بله هیوان به خیال ثلاثت دریا یا تدریسی رو که در تصویه او تا سه روز خیلی تحکیباور نمیمسان واقعا درست نمو کرد و این تأثیر و این تأثیر مثل این جامعه دروح ای که قطعا قانون درش حاکم نبود مثل مکه و به این مطالب روم باستان چه طور اینها رسیده مگر همون نقطه ای که ما هستیم که فترک های بوده مثلا خود اونا هم هست فترک و این بله ولیکن حاله دعوالله که این شعنها هم تقدر از لا لاتو حاصل قاسر این لارده اصابهو قبنون من جرائل عقد اللد یف انوفی یف وحاله به بداله که مدت خسیره در, در اینجا در این حاشیش از چند تا قوانون فرانسوی نماره کرده این دعول استرداد ها بهی این دعول استرداد هم خیاره اعطی از دعول استرداد ها بهی ایغن لغیر قاسر خیلی دردی فی حالات و ولقلق و تدلیس رفیه ها رفت حالا تعجیم نرده که اکراه رو ازیه از سونی آقا آله بخیارن ما که به آله بطلانی میشاندشون در بحث بریم من باز بارد اینجا نمیخوام بارد باشم و اینم ما اشکال دهن واقعا در قانون غربی اکراه و با تدلیس یکی گرفته درست نیستونه زر در ما یه نقاط فنی قاملی داره که در جای خودش اینجا اون نباند ا خیلی طول میشه چون اکراف و غلط و تدریز داره اشون در یک باب گرفته اما نه در یک باب نیست نکات پندیشون فرمان حالا این خیلی عجیبه که همین خیار رو در مدت قصیله به تدریز هم داده فعض بابید این این در شعیت مقدسه در تصریه در سه روز داده شده <تصحیح> اون مطلب چی قبل دستان رب به اسلام این قاسر این قاصر هم که ادعا میکنه که من حواسم نبوده آتش بونه این هم به عینه در روایت رسول الله حیاله منقذ یا منقذ نه حیوانا نشه نگاه کنه این بود تنگی چیزی به کله خودو گیج شده حاضر واقع انفه الزاینه هرنما روز تا هر وقت میخیلی گولاخ لابه گول نگیما من گولاخ نماند تا چه روز هر جایی برنامه خیلی این قاصر رو که حق داره پا سه روز برگردنه اینم در چونت رسولدنه اینم به اینما <تصفيق> ولی نظام برد به شما معتقلن که حیمان رو مطلقا حق داره برگرده که باز ما هست تا مدت سه روز احتیاج هم نداره لا خلابه در صورتی که لا خلابه هم نگه باز حق داره اگر آن کامپیسی بشونه هست مدلزه یا حیاله در یا مدت نحیام اعصابش شجن تیر کش سرش شکسته بود گیج شده بود خیلی تعجب آور انرجتیشن مثل حالت پیجو زاده بود گیج پیغمبر ببین فرداش اگه باه ماامله بکنید اول اخلاقه که حق داشته بشید برگردید صورت حال این خیلی عجیب ای واقعا اون 25 سالو مسئله مصروح که اینل 25 سال پیش ما شد 15 سال بسورم به جای خودش محبوظ مون تو اضابلق و نکاح و آنست و من هم روشن یعنی دقیقا همین محطبی که ایشون از روم قدیل و روم باستان نهر میکنه با یه اختلاف در فقه ما آمده یکیش در قرآن آمده یکیش هم در سنت آمده خیلی جای تحجیب این تدریسی رو که ولی زا چون این قوانیم که ایشون اشاره میکنه این میخوره به قرناه های زهر به و شاید هم اینا از اسلامیون گرفته باشن خیلی اجمل بلد میدونن هنوز برای من واضحه نیست من میخورم چون معتبران اینا روش کار بکنی یه چیزه هست که بالاخره بعدو شما فقط به شهورش در سطح جهانی تازه واقعا اسلام متاثر بونا شده یا من که فکر کنم اونا متاثر به اسلام میشن چون بحث هاش به بسیار, بسیار مفصل و با تفریحات بسیار زیاد در کتب ما اومده چه کتب شیعه و چه کتب سنی الان این که ما اون چی که در معزی داره یک مقدارش در خود قرآن آمده اون مقداری که قاسر بگه من حواستم نبوده تیش بوده در مدت فصیره و حق برگشت داره این در سنت ما در شخص معینی که پیغمبر فرمودن تا سه روز حق داری به نظر اونجا 3 روز ما ده به نظر اون یه اطمینان چیزی که 4 5 شب سنت مرد نشون نگاه کردن یک ماه بود درنادرسی و اینی که در حاشیه نوشته که در تدلیس هم حق استفاده داره در مدت خسیره این که فکر ما قاطعا از اسلامی گرفته باشه چون واقعا اون این قبال نداشتن در آن قدیم هم ندونه احتمال بسیار قریب از اسلامین گرفته که در حالات تدلیز هم کوب دقت بکنید و انصافا این تأبیر مدت قصیره قانونی نیست مدت قصیره اختلاف برانگیزه. همونی که در روایات پیغمه تا سروز این میشه قانونی به جای مدت قصیره تبدیل شد به سلس. بعد و منحونا وجه در فرق میگه یواش یواش این فرق رو پیدا شد بین و عقد الباطل به حکم القانون ظاهر مرادش همین که من گفتم مرادش همین والله الذي لا يحتاج في بثنان هی الاله حکم حکم نر قاضی بذاره اگر این مطلب را هم مرادش همین باشه اینم هم خیلی چون تو هم همین راه در خودو میمونه اصولات در مفاهیمی که یک مقدار ابهام پیدا میکنه یک یک راه اول قانون میاد یک روشی رو برای حل اختلاف میگه این خود فقه انجام میده این دو رو فرق بگذارید ببینید گلی هم میگه نه اینا برگردون به قاضی این راه اول راه دوم دو هیچ کینه میگه راه دوم دو همون مفهوم مثلا منقشه‌نافه اینطلاقی هست هیچ هم میگه این قاعده رجوعات ای رو خوب بفهمید اونجا تکریر داره اینجا قاعده ای باعث رجوع کنه قاعده شینه اگر قواعد اوغلاقی و فهم حرفی هست مراجعه میکنیم اگر نبود به قاضی رفت درست شما که در اولی این لازمیه ایشون داره اینجا به قاعده صحبت میکنه و من هونه و جلال بین العقد ب... الباطل به حکم قانون، و هو الذی لا يحتاجفی بطلانهی لا يحتاجفی بطلانهی لا حکم من القاضی بذاره و بین العقد الذی یدیوز و ابتالهو به دعنان طور فعل القاضی اون لقواد داره قاضی حکم مردیشون میگه وستمر ها در تمیز بینن نوائل من البطلان باقیان که قانون فرنسی قدیم، وقت میگه قانون دوما و بوتیو در قانون فره این قانونی من برای بسن در تمیز الى قانون ناپلعون اسم ناپلعون هم سال چند بار برده برمیشه ناپلعون غیر از آن اونجهات نظامی هاش یک مرداری در قوانین به اصطلاح غبوبی و, و مدنیه قوانین مدنی خود فرانسه تأثیر گذار بوده. لمن هو الى القانون المصری مصری در قانون المصری هم این اما فکر نمی کنم من حرف ایشون رو دعیه نمی چون در مصر و در هر حال فماها و علمها بودن اینا با معیارهای دینی هم حساب کرده اینطور صور نیست که فقط قانون فرانسایی باشه الا ان المشرعین لمیت و خیاءت دقته تو تعبیر ان نوعینه بنال بوصلان باز میگه قانون مصری هم قانون مصری هم قانون فرانسوی قدی اینا تعابیرشون واضح نیست یک جهالی خرابی داره چه دیگه میخونه شماره قانون ماده قانون فلان ماده قانون کجاست به بحث من نیست بله من دیگه واسه بحث, بحث میشد که آشنایی ندارین مثلا ماده فلان و دنگه قانون فلان قانون اصلا برداشت نیستن هر چیزی نیست ما فعلا قبول تعبدی واسه وارد نیستیم پار تخصص نیست تخصیص ندارم بارد این سن فائزه ما حالا قبل این که ما من میخواستم فقط یک مقداری آشنا بشین با مسئله بطلانه اخشون واقعا یک لطایخ خوبی داره با حساب بشه ایشون بعد یک نقطه ای رو توضیح میده بعدها اونشون اساس تخصیم و از اینجا بگیه خوب در قرح بکنه اینو که ما اینا کشون میدونیم از اینجا هست مرسلی ای کنیم کنیم کنیم قبول بکنیم اساس تقسیم اینه وجود و ارکان لعقد لابد من قیام ها حتی کردن. اول باید ارکانی باشه تا عقد و قرارزاد درست باشه این یکی دو و ها ارکان شروط اول باید این چهار باشه تا سهر زده باشه. باشه خب دیوار باید صاف باشه یکی ای این بر باشه یکی ای این از هم باید دیوار باشه هم اون دیوار داره اوصافی باشه خوده پتو کنیم از که میخواد بیار اولا ارکان میخواد ارکان هم شروط ولها به ارکان شروط میخواد تحلیل اهمی شو که چرا بسنان چند جور میشه لابد من توافرها حتی یقوم رخن و هم این پایه این دیوار برای اینکه صحیحی باشه این هم داره شروطیه در اساسیش این درست همه استهار آ مبارک خیلی یعنی درست مرکب که اام یا درتح ها این ن ما توقران داریم چه و اساس عپ بر ات و رضا به محل، مثلا فرسون راضی بشه که این میز رو پروچه یک چیزی مثلا و عرض ناکزاله که انهاناک عبودن شکلیه مثلا گاهی اوقات میز رو اجاره میده گاهی اوقات میز رو میتروشه یا مثلا اجاره ارکروخ با دیگه شکلی باشه مثلا بگه میز در خانه شما باشه این کافی نیست یک شکلی هم داره یا حد دو شکل مندرین ارکان ها. که خود اون میشه گاهی روح اینه. مثلا اگر به شکل تملیدی باشه تملیدی این باشه تملیدی که باشه اجاره است و اقودن اینیه یکتر برای تسریم و فیه ها رو کنم و یک اقودی هم هستم که احیان تر که درام اقودی که به احیان تعلق میگیره البته اون محل و اینها که حق باشه مورد از محل حق باشه انتفاع باشه چی باشه مثلا حق رو انتقال بده. وجود عبود عینیه وجودی که برای اعیان خارجی مثل فروشیان ثمن ذالکه نرا یا ترا نرا اما ارکان العقد هیر رضا و المعهل و الشرط یوزا او الیها اشیر و تقسیم فی بعض الاحوق پس حالکی که روشن شد تقسیم بندی به اینطوریه فعدن عدم ركن من نهاد هل ارکان اگر ركن نبود این چهار دیواری نبود، یک دیوار نبود، خیی نه خیی سخت نیست، اتاق نیست. اینجا رسیدیم به این ادام مثلا وقتی شما این هوا رو توستم مییاد. خب هیچ نذ نیست، هیچ چیزی نیست. این دیگه اصلا عقل نیست. این ادامه عقل مراد این است که فلعن عدل ایلن یعنی روح دروشه. صلح عقد المنعدم الا هو عمد، یعنی که شو روحش من ارکان تشکیلیه. اما الاغوی مثل ارکان جميعا، همه ارکان باشه. ولا که اختل رفنون منها به انلم یستوف شهر یک دیوارش مثلا با صاف باشه صاف نیست کمی کجه لن یستوف شهر هل لازمه مثلا به انکان المحل مثلا غیر معایم میز هست میز رو فروخته نرده هوا میز هست آم میز معایم نیست و غیر قابل تنین قابل تنین نیست او کار از سبب مخالفن لنظام الام این نظام عام هم مقاطب محرمی ماست او کار از سبب یک عقلیست که مخالف با نظام عامه، او مخالفن دل آزام این را بیشتر نظریم به شریعت و دین آزام اجتماعی میدونه نه نظام عام. فی این نوع عقل یکون را باطلن پس اگر رک نبود منعدمه رک نبود شرکش نبود باطل مطلقه فعدت صفت ارکان العقد شروطها زنا که در صدر غیر صحیحه به رضا مشکلی خورده به ان صدر عناقتر اهلیه مثلا بالاش خرمای خوبه برای یک خرمای بده رضاز تعلق یافت به خرمای خوب رضا. مشکل در رضا او اوشابه عیب من العیوب ثلاثه المعروفه علاقا از در تزیز و اکرام کامل اغد و باطلن بطلانن نسید جا تفیقیت تخصیم بندی این تفیقیت تخصیم بندی پس اگر دیوار نبود این میگیم منعظمه رک نبود اگر ارکان بودن شرط نبود میگیم باطل و مطلقه نیستی که ننگ به این معامل تعلق بگیر نه به نظام ها باشه تو اساس تخصیم در اوان غربی اساس تحصیل در این سفیل که بگیم اینه من گفتم دوبارم شونه اینکه نیخلا ایوز رواز با چون مکاسم هرمش متعرض رواز بشیم برام قوارب اغلایی رو در معاملات آشنا بشین از درمان پس اگر روک شرطی از این روک نبود اینجا روی بزران مطرف اگر یک جایی پیدا شد که اید رو رسوم به مزا مثل تصفیل در اینجا رو علو تشریف داشتین شیخ این شما شیخ عنسایی که قضا قوام شرعی ندید و همون ارتقا به سندی شما گش موجب خیار تضییق میشه از مرحوم اردبیری نعم کردیم که قش موجب بطلان بطلان مطلب این تحلیل ها روشن شد طبق این تحلیلی کردن هیچ غلطی نداره در اینجا شما الان بله روشن شد که که میگه طبق واحده طبق این تعدیزی که ما داریم میکنیم باید در جایی که تدریس باشه بطلانش نسبی باشه نه بطلان مطلق این زابطه روشن شد اگر روش نبود دیوار نبود اونه این نیست این ادام عقده دیوار بود شرطش نبود دیوار درست نبود سالم نبود این بطلان مطلقه شرطش هم بود اما به یک جهات سانعی مثل رضا به اونها ذر به ذر ای نه که از بینش بود رزا رو از نبود لزا ایشون در هاشیه نوشته خوب دقیق اما اداسه دره اداسه دره ال... بله اداسه در رزا من عدیم اهلیه خوب دقیق رو کنیم میگه نفر رزا چون تدریس چون کذبه اینجا بطلان نسبی اما اداته در رضا من عدیم الاهلیه دیوانه دیوان رازیشون خونیشی به توشه که از لا غیر ممیز و مجموع اصلا عقضی پیدا شده یعنی ایشون میشه عقض باطل مطلقه لیکن ظاهره باید باشه چون قرار پیگانه میشه ایشون باطل مطلق گیرسی می ایشون میگه اگر رضا از عدیمال احلیه بود که صد شخصیز که قابلیت نداره اون وقت چین رضایی رو به اسطلاح باید بگیم بطلان مطلقه نه اینکه که بطلان نسبیست اون وقت در اینجا یک نکته ای رو ایشون داره نکته رو در فرق بین بطلان مطلب و بطلان نسبی در جایی که طرف به اصطلاح اقدام نکنه و دیگه حالا دیگه میشه. نکنم در اون بحثی شد تا اینجا من بخواستم این نکته رو عرض بکنم که ما یک معیاری رو یا اجمالا از نظر حالا این ایر از جهاد شرعی خودمون ما جهاد شرعی رو فردای اینشالا متحرس میشون نوز که بستانو شد یه جهات قانونی که آمدن گفتن ما میتونیم یک زابطه بگذاریم پس تا اینجا زابطه رو قضا از اما معلوم شد در وجود قانونی ادهی معتقد بودن هر نوع اشکالی در عقد پیدا باشه بازه این عدب بلید. این ما تو اسلامی هم داریم. هر نوع اشکال اما تدریجا آمدن نر تقسیم بندی کردن ما الان در دنیا اسلام همونطوره یک ادامه گفتن هر جا نهی در معامله باشه باشه باطله ادعاونو تقسیم بندی کردن گفتن نهی خود معامله بخوره. به امر خارجی بخوره. باز به امر معامله به سبب بخوره. به مسبب دقت بکنه دقیقاً علمای اسلام هم در در همون تقسیم بندی هایی ما در درس قانون دیدی سعی کردن انجام بدن فقط حق شونه که اونا گفتن ما در جایی که با نظام عام یا با آداب مخالفه بطلان مطلق اینا آمدن به جای نظام عام نظام اسلامی گذاشتن. یعنی به جای نظام عام تعدیل کردن مجموعه به اسمان نهر شرعی آیا اختزار داره یا نداره این اجمال قضیه که از این اجمال روشن شد که در موارد تدلیس با قطع نظر از نصوص و از روایات اینها اصولا یک تفکر واقعی هست که نقد ایجاد وجود تذ리즈 در حد نباید من شع بشه که عقل کلا باطل بشه بطلان مطلق نیست عقل بطلان نسلی پیدا میکنه نه بطلان مطلق